تقریبا همه ما بعضی وقتها به حیوانات حسادت می کنیم. آنها رنج میکشند و می میرند ولی به نظر نمیرسد که مشکلی با این قضیه داشته باشند. زندگی آنها پیچیدگی خیلی کمی دارد وقتی گرسنه هستند غذا میخورند و وقتی خسته هستند می و به نظر میرسد که غریزه به جای استراب بر اندک ملاحظه آنها برای آینده حکومت می کند. تا جایی که ما میتوانیم قضاوت کنیم، هر حیوانی سخت مشغول کاری است که در لحظه انجام می دهد و هیچ وقت به ذهنش خطور نمی کند که آیا زندگی معنا یا آیندهی هم دارد یا نه برای حیوان خوشبختی شامل لذت بردن از زندگی در لحظه است نه اطمینان از داشتن آیندهی سرشار از لذتها در پیش رو این موضوع به این دلیل نیست که حیوان یک تکه جماد بیهست است غالباً حس بینایی شنوایی و بویایی او بسیار قویتر از ماست. و شکی هم در این نیست که حیوان از غذا خوردن و خوابیدنش به شدت لذت میبرد البته برخلاف حواس قویش حیوان مغز غیرحساسی دارد مغز او از مغز ما تر است به همین دلیل حیوان یک موجود عادت است او قادر به استدلال و انتزاع نیست و قوه حافظه و پیشبینی بسیار محدودی دارد بیتردید مغز حساس انسان بی اندازه غنای زندگی او را افزایش میدهد اما برای این ما بهای سنگینی می‌پردازیم چون که افسایش حساسیت به طور عجیب قریبی ما را آسیب پذیر می‌کند برای کاهش آسیب پذیری آدم باید حساسیت کمتری داشته باشد بیشتر سنگ و کمتر آدم و در نتیجه ظرفیت کمتر برای شاد بودن سلام علیه سخاوتی هستم با برنامه 13 ام پادکست 822 امروز دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 من نمیدونم چرا این پادکست رو امروز دارم ضبط می‌کنم و حقش بود دیروز ضبط می‌کردم به خاطر اینکه دیروز خیلی سرحالتر و چیرفولتر بودم و به دلایل نامعلومی امروز خیلی حالم خوب نیست شاید به این دلیل که دیروز با تجهیزاتم که بالاخره گرفتم نون پختم یه ترازوی دیجیتال و دو تا دماسنج و برخلاف انتظار خیلی فرقی نکرد در نتیجه یعنی تقریبا همونی شد که در دفعات قبل بود البته حالا میدونم که دمای فرم تقریبا 25 درجه فارنهایت یا یعنی حدودا 10 درجه سلسیوس سلسیوس کمتر از اون چیزی که کمتر از اون چیزی که باید باشه است و شاید خیلی هم کاری نتونم بکنم به خاطر اینکه که من روی حد اکثر دمایی فر میذارم و این به اونجایی که باید برسه نمیرسه آتیشم که دیگه نمیتونم به فر بکن. بکنم ولی فکر نمی کنم. 25 درجه فارنهایت اینقدر تاثیر داشته باشه احتمال زیاد مربوط به خمیر و تخمیر خمیره که به اندازه کافی گاز درش موجود نیست که بین لایه های خمیر فاصله بی اندازه. یه چیزی دیگه هم فهمیدم این بود که دمای خمیرم بعد از خمیر شدن که باید 26 درجه سانتیگراد گراد باشه 23 درجه سانتیگراده گراده و احتمالا اونو دیگه میتونم درستش بکنم دفعه بعد حالا دیگه مطمئنم که اندازه ها و مقادیر در حد گرم درسته و اونجا مشکلی نیست که خود این خبر خوبیه شاید نوع آردی که من استفاده میکنم متفاوتی از رسیپی که دارم میخواد و شاید زمان تخمیر در این ترکیب یعنی آرد و آبی که من استفاده میکنم با اون بابایی که اون کتابو توی امریکا نوشته متفاوته در هر صورت الان ای ندارم من با تجهیزات کافی برای پختن یک نون ایدئال رو دارم و حالا باید همت کنم و پشت کار بخرج بدم و به اندازی کافی سعی و خطا کنم تا به اون نوم برسم دیگه بهبحانی تجهیزات ندارم مثل زمانی که فکر می کردم اگر یه کامپیوتر بخرم نیاز نیست توی صفح کامپیتر های اتاق کامپیوتر دانشکده بمونم و فکر می کردم اون صف و اون شلوغی باعث میشه که من برنامه نویسین نکنم به خاطر همین پول قرض کردم از و با کلی بدبختی یه کامپیتر خریدم و شاید خداییش با اون کامپیوتر من ساعتم برنامهنیسی نکردم و چند سال بعدش فهمیدم که مثلا دوست ندارم برنامه نویسی بکنم. خوشبختانه توی این کیس نون پختن هزینه تجهیزات و سرمایه که نیاز داشت که من بهانه زودایی بکنم کللا 50 دلار بود یعنی 150 هزار تو دلار کانادا. و حالا باید, باید آزمایش کنم مثل یه مثل یه دانشمند، که با لول آزمایش رو نمیدونم این چیزا دانشمند نمیشه با میکروسکوپ کسی دانشمند نمیشه این تجهیزات کمک میکنه که شما تونید دقیق در سعیو خطا بکنیم سعیو خطایی دقیق من تازه از دیروز شروع شد و امیدوارم که ادامه داشته باشه یه سعیو که با تجهیزات کمتری من از چند سال پیش شروع کردم در زمینه فارمینگ یا کشاورزی کشاورزی دونافینگ کشاورزی گوشاد اگر اسمشو بذاریم نمیدونم ترجمه دونافینگ چی میشه کشاورزی هیچ کاری نکن که دقیق نیست این سریخت ها رو من شروع کردم پیار سال یه مقدار گندم کاشتم که خیلی هم بد نشد ولی در آخرین روزهای منتهی به برداشت گندم گاف خوردش یعنی یه چند تا گاو بدونه بدونه بدونی که من فکرش رو بکنم یعنی خارج از برنامه که من داشتم موفق شده بودن که بیان داخل زمین و گندما رو بخورن پارسال قضیه دراماتیک تر از پیارسال بود یعنی من سطح وسیطه رو زیر کشت بردم و امسال فهمیدم که زمین‌های اطراف رو به دلیل آیش گذاشتن زمین ها نکاشتن و کل منطقه آزاد بود که گاو و گسفن بیان بچرن و از ابتدا ظاهرن جوانه های گندم یا هر چیزی که سبز شده بود اونجا به شکل علوف مصرف شده بود و هیچ چیزی قابل مشاهده نبود این،, این از کشت, کشت گندم در یه سطح وسیع تر به شکل فارمینگ به شکل باغبونی هم پارسال درختایی که ما ک و هفته گذشته در زرخشت من اینا رو مشاهده دقیق کردم چهار پنج درشون به شدت آفت داشت چون من سم نمیخوام استفاده بکنم و کاری هم با اون همه علفه هرزی که اون زیر سبز میشه تقریبا ندارم مثلا درخت گوجه سبز یا برگاش برگاشتوری بود که انگار دوچاره شده اتمی شده و به شدت آسیب دیده بود از همه, ب... از همه بهتر درخت های غیر مصمرن یعنی درخت که قرار نیست باری بدن مثل شمشاد یا بید مجنون اینا, اینا از همه سرحالترن و تازه دارم لمس میکنم این فلسفه جوانگزی رو که میگه همه, همه فایده مفید بودن رو میدونن ولی هیشکی فایده بیفایده بودن رو نمیدونه یه همچین چیزیه درختهایی که مسمر نیستن خیلی آسیب پذیری کمتری دارن نسبت به درختهایی که بار میدن درختهایی که اونجا خیلی لوکال هستن اوضاع بهتری دارن مثل زیتون و انار و انجیر فعلا در وضعیت قابل قبولی هن و من خیلی آفتی درشون مشاهده نکردم یه درخت خورمالو هم داریم که ظاهرند خورمالو خیلی برای اون منطقه، مناسبه و درختای خورمالی که اونجا همسایه ها دارند خیلی شکوفا و بارور هست ولی پارسال هم که سال اولش بود دو تا خرمالو داد نهاله کوچیک ما ولی امسال به نظر میومد که آفت زیادی داره یه جونه برای ریزی داشتن برگاشو می خوردن برگاش لوله نشده بود ولی خورده شده بود برگاش تا زیادی. خواهیم دید که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و این تعادل اکوسیستم که در ظاهر من دوست دارم مشاهده بکنم به چه سمت و سوی میره این تعادل اکوسیستم و این تعامل اکوسیستم که من شعارش رو شروع کردم به دادن و به نظر میاد که هنوز خیلی بوی چندانی از کلیت غضیه نبردم زمانی به چالش کشیده شد که چند روز پیش که ما زرخش بودیم خیلی سورپرایزین متوجه وجود یک سگ در داخل حیات شدیم سگ قبلا زیاد می اومد تو حیات ما تا اینکه ما دیوارا رو بردیم بالا یه نیم متری و دیگه سگا نمیتونستن بپرند توی حیات ما از بیرون و خیالمون راحت بود که دیگه سگ نمیاد تو حیات ولی چند روز پیش دیدیم که یک سگ که به نظر می اومد یه طوله هشت نه ماه هست توی حیات بود و پاشن، یه پاشم میلنگید بشه به شدت. یعنی کاملا آسیب دیده بود حالا مشکلش چی بود دیگه من نمی و این رو من از در بیرون می کردم و دو دقیقه بعد توی حیات ما بود دوباره که بعدم متوجه شدم یکی از همسایه های ما که دیوارش از دیوار ما کتاهتره و این دیوار منتهی می شه به دیوار ما این سگ از اون دیوار به شکل یک پله استفاده میکنه و میپره تو حیاط ما و بعد دیگه نمیتونه بیرون بره، چون دیگه مشابه اون پله این بر وجود نداره. یه راه یک طرفه ای رو می و توی حیاط ما میمود. خانومم دلش سوخت برای این سگ و بهش غذا داد که شد اول یه ماجرای طولانی. سگم از اونجایی که موجود بسیار باهوش وقتی شما، بهش قضا میدین احساس دوستی خیلی شدیدی به شما میکنه و حتی اگر بیرونش بکنین این باور یعنی فکر میکنه که دوست داری شما دوست داری این برگرد خودش هم که خیلی دوست داره برگرد و مثل این کارتونا و من وقتی از در بیرونش میکردم سرمو که برمیگردوندم این دوباره توی حیات بود نمینامی با اون پایی لنگش به چه سرعتی میرفت و یه کوچه رو دور میزد و از خونه دوباره تو من به همراه مادرم و خانومم زرخشت بودیم و مادرم به شدت از سگ میترسه یعنی کاملا هراس داره از وجود سگ در این فاصله نزدیک با وجودی که این سگ سگ کاملا بیازار بود و حتی پارس هم بدبخت من پیشنهاد دادم این سگ رو بخوشیم یعنی یک قضایی رو آلوده به زهر بکنیم مثل مثلا مرگ موشی چیزی و بیندازیم جلوش بخوره که هم خودش از این زجری که داشت میکشید و اون درد پاش اینا رها بشه و هنکه ما خیالیمون راحت بشه که این دیگه نمیپره تو حیات چون وقتی ما نیستیم این اگر توی حیات میموند امکان داشت که به خیلی از درخت و اینا آسیب بزنه بر اثر و نگرانی و نمیدونم فشار عصبی هر چیزی و کل باخچمونو تخریب بکنه. مادرم و خانومم به شدت مخالفت, مخالفت کردم با ایده سک کشی من و نگاه مشکوکی کردن که چطور من دلم میاد همچین ایدهی داشته باشم من ایده من بخشی از دل رحمی برای سک بود یعنی واقعا دوست داشتم که اون خلاص بشه از این زجری که داشت میکشید یا شاید هم این یه توجیح بود که میخواستم خلاص شدن از آسیب احتمال آسیبی که اون به باغچه ما میرسون رو با حس حیوان هی، دوستی خودم توجیح بکنم. خانم منو چالش کرد که اگر تو ف... تو معتقدی که اکوسیستم باید کار خودش رو بکنه و همه چیز در کنار هم به تعادل برسن مشکلت با این سگ بذار اینم باشه. که واقعا چالش خیلی عمیقی بود و منو به فکر فرو برد و بیشم گفتم گفتم یعنی اگر ما بپذیریم که این سگ بخشی از اکوسیستم باید باشه بعدم بپذیریم که درختامون اگر دفعه بعد اومدیم شکسته شده باشه یا نهال‌های کوچیک‌تر له شده باشن باخچه سبزیجات کلاً زیرو رو شده باشه که اونم خیلی خیلی اوپن مایندد اینو پذیرف یعنی گفت کاریش نمیشه کرد همینی که هست ولی به نظر من یه مقدار دورویی یا هیپوکرسیه عجیب غریبی در این تئوری دونافینگ و اکوسیستمی کسانی مثل ما وجود داره و زمانی آشکار میشه که از کامفورت زونمون بیرون بریم یعنی اتفاقاتی بیفته که مثلا اگه به جای سگ دوتا مار توی حیات بودن بازم ما این رو در همین حد میپذیرفتیم و شاید باز بستگی به سایز مار داشت مثلا اگه یه مار کوچیک نیم متری بود یه مقدار کش میدادیم به خودمون و میپذیرفتیم که اوکی این اینم بخشی از اکوسیستمه و آخرش شاید یه اوقات بیاد اینو بگیره یا خودش بره یا مثلا با تغییر فصل بمیره ولی اگر یه ماره دومتر و نیمیه قطور توی،, توی, توی حیات خیلی راحت میخزید بازم این تهوری دونافینگ ما کار میکرد و تحملش میکردیم یا اینکه در اولین برخورد اصطاحح فریک می زدیم و در صدد کشتن مار برمیومدیم که احتمال خیلی خیلی زیاد این حالت دوم بود همون جوری که مثلا یه موش رو توی خونش تحمل نمیکنه شاید شاید اینقدر دوافنگ باشه باشه که پشه یا مگس رو نکشه ولی آیا واقعا موش هم در محل زندگی خودش تحمل میکنه همون کسایی که اینقدر با گربه ها یا سگا دوستن آیا واقعا با موش یا اغرب یا معرمک همکه هستند. بسته به اینکه شما به چه حیگونی واکنش بد نشون میدین و به کدوم واکنش مثبت حیوان دوستی و انسان دوستی شما موش مثلا توی, توی کانادا، یا امریکا یه،, یه،, یه خبری بود که یه هملسی اعتراض کرده بود که من متتا اینجا بدون غذا و لباس مناسب توی خیابون هستم و هی، هیچ کسی واکنش نشون نمیده ولی یه بار یه سگ اینجا افتاده بود و اولین کسی که اینو دید زنگ زد و یه آمبولانسی اومد و اینو بردن که بهش کمک بکن. بنابراین به نظر میاد که حس نودوسی به شکل کلی یا انواع دیگر دوستی کاملا نسبیه در هر صورت من دقیق میتونم بگم که در حال حاضر دارم سعی خطا میکنم که یک ورژن کاستومایش شده از طرف خودم برای اکوسیستمی دیدن قضایی رو تجربه کنم این به این معنی که بعضی از حیبونا رو میتونم بپذیرم درون اون اکوسیستمی که خودم تعریف کردم بعضیاش رو نمیتونم بپذیرم و تمایل به کشتنشون دارم مثل سگ لنگ که از روی دیوار میپره تو حیات و دیگه نمیتونه بره بیرون در حساب این سگ رو ما نکشتیم یعنی اگر شما حس حیبون دوستیتون خیلی بیدار شده و میخواین به من انتقاد بکنین این ایده من اجرایی نشد اون سگ الان احتمال زیاد زنده هست و فقط از همسایامون که کلید داره خواستیم روزی یه بار چک بکنه و این سگ خیلی بیتاب شده از در بیرون. به امید روزی که دیگه این سگ برنگرده و لنگیدن و رنج و خارش رو نمیدونم هر بدبختی که داره رو به یه جایی دورتر از ما ببره جایی که ما نبینیمش شاید این سگ که میگن حیوان وفاداریه تا دو هفته دیگه صبر کنه همونجا با هر بدبختی هست هی بره و بیاد تا تا ما دوباره برگردیم اونجا و شاید یه تیکه یا یه غذای دیگه بهش بدیم و همین سیستم ادامه پیدا بکنه. شاید تا زمانی که ما نظرمون عوض شه و این سگ رو اداپت کنیم با عنوان سگ خونمون. کسی چه میدونه؟ همونطور که شاید مطلع شده باشید دیروز ما بالاخره استارتاپ پرتاک رو لانچ کردیم به همراه آرش و شاید هم پادکستی که دیروز منتشر رو شنیده باشین. استارتاپ مثل همون مثل همون سگس شاید واقعا یه یه چیزه یه موجود لنگ با عیب و نقصیه که میخواد خودش رو توی یه،, یه اکوسیستمی جا بکنه و توی این اکوسیستم خیلی هم پذیرفته نیست. یه ازش میترسن یه ازش منزجر میشن. کارشو درست انجام نمیده چون هنوز فیچرش کامل نیست. ایبو یرات داره و در تماس با زندگی هر کسی هم که قرار بگیره اون آدم ها که پوشش کنن دورتر و از شرش خلاص بشن و حالا به عده این که مثل اون سگ لنگ اگر از در بیرونش میکنن از دیوار دوباره بیاد تو و اینقدر پشت کار و به بخرش به فیچرهای خودش رو کامل بکنه به چند نفر بفروشه و غذا بیاد تا بلاخره شاید بخشی از اون اکوسیستم بشه فایده دوناثینگ واقعا همینه که خیلی هم دوناثینگ نیست ولی ممارست و موندن در یک اکوسیستم و بخشی از یک اکوسیستم شدن طوری که دیگه نشه تمیز داد که آیا این اونجا بوده نبوده هست نیست یه چیز اضافه شده است مثل درختای جنگل و حیوان های جنگل و حتی آدمای یک شهر که دیگه, دیگه پذیرفته شده هست مثل یه دستفروش یا گل فروشی که سالهاست یه جای ناجوری مثل روی پلی یا یه جایی توی پیاده رو بساط میکنه و چیزی میفروشه هر چقدر که شهرداری این رو جمعش بکنه و باعث مزاحم در رته آمد آدمو بشه ولی این تکرار و ممارسصد و بودن اون آدم توی اون اکوسیستم در مدت طولانی که اون رو بخشی از اون اکوسیستم میکنه نمیدونم در هر صورت امید امیدوارم که پرتاک نون پختن من و کشاورزی دونافنگ من حداقل یه دونشکی همچین حالتی رو داشته باشه و من از نزدیک تجربه کنم وقتی که یک چیزی رو که خودم کاشتم بعد از گذشت چند سال اضافه که ولی اینتگریت یعنی یک بارچه بشه با یک اکوسیستمی و این رو بتونم بخشی از تجربیات در... یعنی در, در بازی زمانی که زندگی هست... زندگی میکنم و زنده هستم خودم تجربه کنم احتمالا تجربه لذت بخشیه وقتی که شما یه درخت رو میکارین و بعد از چند سال بینیم که دیگه این... این ادابت شده اگرم آفت میزنه 10 درصد برگاشون آفت رو داره و 90 درصد برگاشتونستن به شکل طبیعی با مکانیزم دفاعی خودشون با اون مقابله بکنن مثل خوب شدنه ما وقتی که سرما می خوریم. یعنی اگر شما دو سه روز تعمل کنین اون در تب سر... سرماخوردگی خوردگی رو کاری که من بعضی وقتا انجام میدم و قرص نخورین و آمپول نزنین بعدش می به خودتون افتخار بکنین که با... و به بدن خودتون افتخار بکنین و به همه چیزهای جوانه هستی افتخار بکنین که این قدرت و توانایی رو ش... به شما داده که به شکل دونافینگ بر مرزتون غلبه بکنین. یه کامنت خیلی جالبی مرتض توی پا... پادکست نوشته بود که حقش بود من این رو به عنوان نوشته اول پادکست می ولی خب چون رسمه که این یعنی میخوام رسم باشه که این نوشته از یه کتابی باشه این این کامنت مرتظ رو اینجا می خونم. ولی به نظر من این کاملا میتونونه یه کتاب باشه به اندازه یه کتاب و بنزییر خرده یه کتاب این اعتبار رو من به این نوشته میدم بسیار عمیق و الهام بخشه. نوشته اولی که یعنی نوشته که اول پادکست براتون خوندم از کتاب خرد ناامنی یا Wisdom of Insecurity نوشته آلن واتس بود. کتاب بسیار زیبایی که دارم می خونمش. و اما کامنت مرتضی من درباره رابطه مرگ و پخت نون چیز زیادی به ذهنم نمیرسد شاید اگر سعی کنم بتوانم مطلبی بنویسم اما توصیه شده ام چیزی بنویسم که روان و بدون گیر و گور باشد برای همین رابطه ازدواج و نون پختن را که فکر می کنم برایم راحت‌تر می نویسم سه مدل برخورد با رابطه را در زوجین من شناسایی کردم الف طرفین فرض می‌کنند رابطه بلا فاصله پس از ازدواج تشکیل شده و کامل است مانند خرید یک اتومبیل که محصول نهایی را کامل و بدون نقص تحویل میگیرید داخل پرانتز فعلا خودروی داخلی را فراموش کنید و باید از آن استفاده کرد و تلاشی برای تعمیق رابطه انجام نمیگیرد که احتمالا این رابطه در سالهای اولیه با مشکل روبرو می‌شود. طرف طرفین معتقد به ساخت زیربنایی رابطه هستند و برای سهولت کار ازدواج در سن کم که شخصیت طرفین شکل نگرفته را توصیه میکنند تا با مصالح خام وجودی مثل گچ و سیمان و میلگرد در ساختمان بنای مشترک از پی ساخته شود که ضرب مسئله از مورچه‌ای قصر سلیمانی خواست در اینجا مساوق پیدا میکند کند ازدواج در سن... ازدواج در سنین بالا تشویق که طرفین با دست پر به میدان میآیند مانند ساخت یک خانه پیش ساخته که یافتن فرد مناسب بسیار مهم می شود که مشکلات نهگانه داخل پرانتز خودمان را درک نمی کنیم طرف مقابل را درک نمی کنیم و غیره پیش می آید. شاید مام طبیعت بسیار مهربانتر از این باشد و ازدواج روش نو نید برد را بیشتر برای ما بپسندد. یعنی زوجین مانند آب و آرد و کمی مخمر احساس عاطفه و هورمون و کمی مخمر احساس عاطفه و هورمون مخلوط شوند و زوجین برای مدتی طولانی کاری به این رابطه نشته باشند و چون این خیشتنداری بسیار سخت است طبیعت برای تسهیل این خیشتنداری به زوجین فرزند فرزندی یا فرزندانی میدهد تا حداقل 18 سال حسابی مشغول باشند و به رابطه خود ور نروند بعد بعد از استقلال فرزندان که تخمیر به خوبی انجام و همچنین با حد اقل یک ساعت و نیم گفتگوی روزانه زوجین در این زمینه هم استاد شدند. استاد شدند، می در کوره رنج های میانسالی رابطه خود را پخته و سالها با خوبی و خوشی زندگی کنند. کوره رنج های میانسالی، عجب استاره این این چند تا پاراگراف رو من تقدیم می کنم به همه زوجینی که مشکلات عدیده دارن مثل من و خانمم. یه یه ایمیل دیگه هم گرفته بودم در آدرس 822.com که اگر چیزی در مورد این پادکست میخواین بگین یا داخل این پادکست میخواین بگین همچنان میتونیم بهش ایمیل بفرستین یه خانمی نوشتن که سلام دختر چار و نیم ساله من هم دائما حسلش سر رفته درست مثل شما و منو بیچاره کرده و درست مثل بچگی های من چون من حالا دیگه اونقدر حسلم سر نمیره و بعضی اوقات نمیدونم که باهاش هاش کنم. من مثل مامان شما نیستم و اکثر مواقع بهش میگم نمیدونم چه کار کنم برات و به گریه میشه شما نظری داریم در موردش یا احساسش در این حال یه خواهر بزرگتر پنی سال بزرگتر داره یه چیزای دیگه در موردای دیگه هم میخواستم بنویسم یادم نمیاد هر وقت یارتون اومد بنویسیم خیلی اه، خیلی مسقره است که یک نفر اه، یعنی اه، مسخره که نه ولی عجیب. عجیبه که یک نفر از من که بچه ندارم در مورد احساس و در مورد اه اه یعنی در مورد مواجه شدن با مسائل بچهش از من سوال بپرسه ولی به از من بهترین کاری که شما میکنین یعنی کاری که شما میکنین بهترین کاره یعنی که بهش میگین نمیدونم چه کار کنم برات. من اگر واقعا یک چیز باشه که حسرت بخورم که بچه ندارم این هستش که دوست داشتم یعنی فنت... فنتسایز میکنم اینو که ای کاش بچه داشتم و زمانی که بچه ازم میپرسید اصلا اینو باید چی کار بکنم یا چرا مثلا شب تاریکه یا چرا پرنده ها اینجوری صداشون بهش میگفتم نمیدونم و اون لذت و اون لحظه ای که دوست داشتم تو چشم بچه هم نگاه بکنم و بهش بگم نمیدونم و ببینم این چکس و نشون میده خیلی خیلی فنتسیهی که احتمالا من به گور میبرم به جز این فکر نمی کنم حسرت دیگه داشتم از داشته باشم از بچه نداشتم در حصول شما بهترین کار میکنین هر زمانی که حوصلش سرفته بهش بگین نمیدونم چه کار کنم برات حتی به نظر من توصیه ن... <تصفح> نکنین که بره با خواهر بزرگترش بازی بکنه صرفا بهش بگین که نمیدونم و حدث من اینه که بچه به تدریج گریهش کمتر میشه و خودش راه حل پیدا میکنه براش برای خودش و این رو واقعا توسته کنم تحمیم بدیم به چیزهای دیگه هم که ازتون میخواد به جز منوارد حیاتی که به حال جون بچه در خطره و واقعا باید بهش بپردازین در زمینی آموزش و سایر مسائلی که سراغ شما میاد و میخواد بدونه بهش به این که نمیدونم چیکار کنم باید. یه جو که خیلی لوسی چند سال پیش ولی خی... در این حال خیلی پرمعنایی یه نفر برای من تعریف کرد که یه آقایی از سر کار میاد خونه و بچه شروع می‌کنن ازش سوال پرسیدن که چرا زمین گرده چرا شب تاریکه چرا صابون کف میکنه از این جور سوالا و مادرش بهش میگه بچه بجون پدرت تازه اومده بذاری زر استراحت بکنم اینا و پدر که در تمام مدت این سوالا ساکت بوده و به بچه نگاه میکرد به مادرش میگه که نه نه نه بهتفاقا خوبه بذار بچه سوال بپرسه چار تا چیز یاد بگیره میدونم اینجور خیلی مسخره و یخیه ولی در صورت ممکنه به سوال شما و پیدا کردن جواب شما کمک بکنه آخرین ایمیل هم از یک آقای به نام عباس دریافت شده که نوشتن به نظر من شما یک درست هم احتمال نمیدهید که شنونده ی های شما یک جمعه خانوادگی باشد در ماشین داشتم گوش می دادم و دیدم راجب به شت و فاک دارید صحبت می کنید آبروم رفت بعید میدونم که راجب اون مفاهیم من داشتم صحبت می کردم احتمالا از اون کلمات استفاده کردم واقعا تو به امروز فکر نمیکردم که این پادکست رو کسی در جمع خانوادگی گوش بده این, این خیلی برای خود من سورپرایزنگ بود تنه چیزی که میتونم بگم نمیتونم بگم متاسف هم که از این کلمات استفاده کردم چون واقعا متاسف نیستم و اگر پیش بیاد یعنی حس من در اون لحظه به کار بردن این کلمات یا کلمات دیگه از مجموعه لغاتی که میدونم باشه حتما استفاده خواهم کرد بدون افتخار و بدون تاسف ولی واقعا توصیهم به اینه که شما اگر حساسیت داریم در، یعنی حساسی، نگران آبروتون در جمع خانوادگی هستین در جمع خانوادگی به پادکست 822 گوش ندین این پادکست به اضافه 18 یا بهتر بگم به اضافه 22 هست به اضافه 28 پادکست 822 به اضافه 28 اگر سنتون زیر 28 ساله به این پادکست گوش ندین در جمع خانوادگی گوش ندین اگر بعضی از کلمات که رایج نیست در فرهنگ و ادبیات فارسی این کلمات شما رو نگران ناراحت و معذب میکنه به پادکست 822 گوش ندین در غیر این صورت به پادکست 822 گوش بدین اگر چیزی دارین که در این پادکست دوستایی گفته بشه به آدرس 822 از علی بفرستین تا هفته بعد خدافظ. بعد از ظهر روی یک تپه من خوشحالترین چیز خواهم بود. زیر خورشید: من به صد گل دست خواهم زد بدون اینکه یکیشان را بچینم من به درره ها و ابرها نگاه خواهم کرد با چشمانی ساکت به باد نگاه میکنم که علفها ها را میخواابند و علفها بلند می شوند و وقتی که چراغ از شهر شروع به نمایان شدن می کنند، من مال خودم را علامت میگذارم و بعد سرازیر میشوم